سپاس خداوند جان و خرد را که مرا یاری داد روایت شاهنامه را ادامه دهم و دیگر سپاس از شما از شما هم نیهنانی که اگر یاریم نمیدادید، دادید آرزوی بزرگ من روایت شفاهی شاهنامه بدین گونه هرگز تحقق نمی آفد بین دو روایت اول و دوم و این دو روایت سوم و چهارم که همزمان ارائه می شود نزدیک به سه سال زمان گذشته است چرا که تدارک مادی کار سخت و دشوار بود و زندگی بیخوده در تبعید گاه نفسگیر و همیشه وقتگیر اما به هر خال شد و اینک روایت سوم اگر یاریم دهید اگر دیگران را از وجود این طرح یعنی روایت شفاهی شاهنامه آگاه کنید و اگر من از خداوند زمان یابم کار روایت شاهنامه را دنبال خواهم کرد همبتن شما سعید قائم مقامی در روایت نخست، از فردوسی و زندگی پرفراز و نشیبش و از چگونگی تداروک این حماسه بزرگ بشری شاهنامه برای گفتم. و در همون روایت نخستین، از نخستین شاهان گفتم کیومرس، هوشنگ تحمورس و جمشید که پس از سیصد سال پادشاهی از سر کبر و قرور خود را خدا خواند وفرخی زدی از اون دور شد و پس از چهارصد سال پنهان زیستن و گریختن سرانجام به دست زهاک با اره به دونیم شد تیرگی و تباهی بر ایران زمین چیره شد زهاک بر تخت پادشاهان ایران تکیه زد و هزار سال فرمانروایی تاریکی و نفرت و تباهی و خونریزی بر ایران و ایرانیان آغاز گشت در روایت دوم از زاده شدن فریدون از حماسه کاوی آهنگر از چگونگی پیدایش درفش کاویان و از پیوستن کاوه به فریدون و از نبردهای دلیرانه فریدون با زهاک هاک گفتم نبردهایی که به پیروزی نهایی فریدون ختم شد و زهاک به دستور فریدون در قاری در کوه دماوند برای همیشه به برد کشیده شد و به این ترتیب دوران 500 ساله پادشاهی فریدون بزرگ آغاز شد روزگاری بس شگفتنگیز که اینک برای تن روایت می ریدون شد بر جهان کامکار بدو شاد شد گردش روزگار به رسم کیان تاج و تخت مهی بیا راست با کاخ شاهنشهی <تصفيق> به روز خجسته سر مهرماه به سر برمهادن کیان کلا زمانه بیندو گشت از بدی هر یک ره ایزوی دل از داوری ها بپردارفتند به آین یکی جشن نو به بفرمود تا آتش افروتند همه انبر و زعفران سویدند پرستیدن مهبگان دین اوست تناسانی و خردن آین اوست کنون یادگار است از او ماخمه بکوش و برنج ایچ من با چه؟ برابود جهان سالیان 500 نه نیفکن یک روز بنیاد بد جهان چون برو بر نمانده پسر پسر تونیز آز مپرست و اندو مخر نماند چنین دان جهان بر کسی درو شادمانی نبینی بس فرانک مادر گرامی فرانک کشیده فریدون چون از پیروزی فرزندش بر زههاق و رهایی ایرانیان آگاهی یافت به درگاه خداوند فراوان نیایش و سپاسگزاری کرد فرانک نا آگاه بود زین نهان که فرزند او شاه شد بر جهان زه شد تخت شاهی سر سرآمد بر او روزگار مهی پس پساگاهی آمد زفر رخ به سر به مادر که فرزند شد تاجور نیایش کنان شد سر و تن بشست به پیش جهاندار آمد نخوست نهاد سرش پست بر خاک بر همی خاند نفرین به زهاک بر همی آفرین خاند بر کردگار بر شادمان گردش روزگار تاکران ایران بزرگ از پیروزی فریدون بر زهاک و بر تخت نشستن او آگاهی ها از آن پس جهان دیدگان پیش شاه زهر گوشهی برگرفتن را همه و هر براندن به تخت سپه بود فرویدن همان مهتران از همه کشورش بدان فرراهی سفزده بردرش زگستان همه خاندن بر بران تخت پاج و کلاف نگین همه دست برداشته باسمان با گشاده بروبر زنیکی زبان که جاوید بادا چنین روزگار و رومند بادا چنین شهریار نخستین سال‌های سالهای پادشاهی فریدون با سفرهای او به گوشه و کنار قلم روی پادشاهیش همراه است. او در این سفرها همه ویرانی های بازمانده از هزار سال چیرگی زهاک را آباد می سازد و ایران زمین را بار دیگر سامان می‌بخشد و سرانجام در میشه ی تم میشه ماندگار می شود پس آن پس فریدون به گرد جهان بگردید و دید آشکار نهان هران چیز که از راه بیداد بود هران بوم و برکان آباد بود به داد و به آباد شهر دست زد چنان که از راه شهریاران سزد بیا راست گیتی به سان بهشت به جای گیا سر و گلبون بکشت زامل گذر سوی تمیشه تم کرد نشستند آن نام برمیشه کرد کجا که از جهان کوس خانی همین جز این نیز نامش ندانی همین پنجاه سال از زندگی فریدون میگذرد خداوند از همسرانش دختران جمشید سه پسر به او داده است پسر بزرگ و میانی از شهر ناز و پسر کوچکتر از ارنواز ز سالش چو یک پنجهندر در رسید سه فرزندش آمد گرامی پدید به وقت جهاندار هر سه پسر سفر رخ نژاد از در تاج زر به بالا چو سرو و برخ چون بهار به هر از شهر از یکی کهته از خوب رخ ارنواز زبان می گذارند. پسران فریدون خود مردانی شدند یکی از دیگری برازنده تر هر کدام شایسته سربری و پادشاهی کشوری و فریدون میاندیشد زمان ازدواج و زناشویی آنان فرا رسیده است جستجو و یافتن دوشیزگانی که شایسته همسری پسران او باشند بس دشوار است فریدون خواستار آن است که همسران آینده پسرانش از زیبایی، هوش و نصب ممتاز و بالا برخوردار باشند. اما هیچ کدام از دیگری چیزی بیش یا کم نداشته باشند. یافتن چنین دوشیزگانی را به یکی از نزدیکترین و کارازموده ترین مشاورین و خدمتکاران خیش جندل می به دو گفت بر گرد, گرد جهان سه دختر گزین از نژاد شهان به خوبی سزای فرزند من چنان چون بشایند پیوند من پدر نام ناکرده از نازشان بدان تا نخوانند باوازشان سخاهر ز یک مادر و یک پدر پری چهره و پاک و خسر و به بالا و دیدار هر سه یکی که این را ندارند آن اندکی جندل در جستجوی چنین دوشیزگانی تمامی قلمرو پهناور ایران بزرگ را زیر پا گذارد و سرانجام آگاه می شود که صرف پادشاه یمن که از خراجگزاران ایران بود سه دختر زیبا با همان ویشهی های دلخواه فریدون در پس پرده در خانه و در کاخ خود دارد پس بیدرنگ راهی یمن می شود و پیام خواستگاری فریدون را با سهر پادشاه یمن در میان می گذارد. مرا پادشاهی آباد هست، همان گنج و مردی و نیروی دست، سفرزند شایسته تاج و با خرطمند و دانش و دستگاه، هر کام و هر خواست به هر آرزو دست ایشان دراز، مارین سه گران را در نهوف بباید همیشه شاهزاده سه جفت فریدون در پیام خود به پادشاه یمن می گوید از آگاهان خبر یافتم سه دختر زیبا داری که هنوز آنها را نامگذاری نکرده ای تا مبادا کسی نام آنها را بر زبان آورد من نیست پسر دارم نام نا شایسته همسری دختران تو هستند سه کاراگهان آگهی یافتم به دین آگهی تیز بشتافتم کجا از پس پرده پوشیده روی سه پاکیزه داری تو ای نام جون مران هر سرانوز ناکرد نام چو بشنیدمین این شد دلم شاد کام که ما نیز نام سفر رخ نجاد چو اندر خرایب نکردیم یاد کنون این گرامی دگونه گوهر به بایت برامی با یک دگر سه پوشیده رخ را سدهیم جو سزا در سزا، کار گفت. پادشاه یمن از دریافت پیام خاستگاری فریدون خوشنود نمی شود چرا که می همسری دخترانش با پسران فریدون دوری و سفر آنها از یمن را به دنبال خواهد داشت با این همه می داند فریدون کسی نیست که به آسانی درخواستش را بتواندن کرد به بیشان که شنیده است او با زهاد کرده است و قدرت و عظمت فریدون آغاز پس از فرستادی فریدون جندل می خواهد به او فرصت اندیشیدن بدهد بانگاه با بزرگان و سرداران سرزمینش دشت نیزه یمن به مشورت می بردازد فراور کس از دشت نیزه بر برخیش خواد آزموده سران نهفته برون آوری دست مخفت همه رازها پیش ایشان بگفت ما را زگیتی و پیوند خیشت سشم است روشن به دیدار پیچ فریدون فرستاد زیمن پیام بگسترد پیشم یکی خوب دام همی کرد خواهد ز چشمم جدا یکی رأی خواهم زدن با شما فرستاده گوید چنین گفت شاه که ما را سشا هست زیبای گاه گراینده هر سه به پیوند من بسر سر روی پوشیده فرزند من اگر گویماری و دلزان توهی دروغن در خورد ماشهی وگر آرزوها سپارم به دوی شبد دل پراتش پر از آب روی وگر سر به پیچم زگفتار اوی حراسان شود دلز آزار اوی کسی کو بود شهریار زمین است با او سگالید چین شنید این سخن مردم راخجوی که زحاک رازو چه آمد بروی از این در سخن هرچه هست یاد سراسر به منور بباید گوشاد سرداران و دلاوران یمن از تردید و ترس پادشاه خیش به خشم میآیند که اگر فریدون پادشاه است ما نیز سرداران دلاوران و مردان جنگ هستیم و اگر از جنگ با پادشاه ایران در حراسی از او کارها و چیزهایی بخوا که از او انجام دادنشان بر نیاید جهان آسمد دلاورسران گشادند یک یک پاسخ زبان ما هم چنان این نبینیم رای که هر باد را تو بجمیز جا اگر شد فریدون چنین شهریار نما بندگانی با گوش سخن سخنگفتن و بخش شایی ماست. انان و سنان تافتن دین ماست. به خنجر زمین را میستان کنید به نیزه هوا را نیستان سه فرزند گر بر تو هست عرجمند سر بطر بک و لب را ببند وگر چاره کرد خواهی همین بترسی از این پادشاهی همی از او آرزوهای پرمایجون که کرداران را نبینند صرف پادشاهی من در میابد که سخنان سرداران و نزلیکانش پایه و اساسی ندارند و چاری کار در سرسختی و پیکار با فریدون نیست پس به فرستادی فریدون جندل میگوید گرچه دوری سه دخترم برایم سخت و دشوار است با این همه درخواست فریدون را میپذیرم اما هنگامی دختران من از خانه و کاخ و کشور من پای بیرون میگذارند که سه شاهزادی ایرانی به یمن آمده باشند تا من از ویژگی و شایستگی آنان آگاه شده دختران خود را به راه و روش و باورها و سنتهای خود من به همسریانها داده باشم فرستادی شاه را پیش خاند فراوان سخن را به چرمی برم. من شهریار یار تو را دارم به هر چم بفرمود فرمان برم اگر پادشاه دیده خواهد از من و اگر دشت گردان و تخت یمن مرا خارتر ز که فرزند خیش نبینم به هنگام است پیش پسر شاه را این چنین است کام نشاید زدن جز به فرمانش به فرمان شاه این سه فرزند من برون آن یهایت سه دربند من کجا من ببینم سه شاه تو را فوزنده تاجگاه تو را بیایند شادان به نزدیک من شبد روشن جان تاریک من کنم شادمان دل دیدارشان ببینم روانهای بیدارشان پس یه سه روشن جهانبین خیش به دیشان سپارم به آین خیش جندل، چو پاسخ شنید، ببوسید تختش، چنان چون سزید و از لب زیوان او، سوی شهبیار جهان کرد روح. جندل به تا به سوی ایران شهر و فریدون باز میکنید از جستجوهای خود از پادشاه من و سیبعی و شایستگی دخترانش و از اکراه و انگاه درخوااست سرد پادشاه من و اینکه خواستار دیدار سه ایرانی است با فریدون سخن میگوید فریدون نیز پسرانش را فرا میخواند و همه ماجرا باز میگوید بان ها خوشدار می دهد که دعوت شاهی من از شما در حقیقت آزمون و امتحان هوش و خرد و قدرت و توانایی شماست. فریدون که خود دارای فرحی زدی و توانایی های فوق بشری است به پسرانش میگوید بدانید او در نخستین دیدار شما و دخترانش از شما خواهد پرسید که کدامشان بزرگترین، و کدامشان میانی و کدامشان کوچکترین است من پاسخ را به شما میگویم. بدانید که انگام ورود دختران به تالار میهمانی و زیافت کوچکترین دختران پیشا پیش دو دیگر وارد خواهند شد و میانه میان و بزرگترین آخرین خواهد بود که به تالار زیافت پار میگذارن از این حرسه که تر بود پیش رو مهین از پس و درمیان ماه نو نشیند کهین که نزد محتر پسر مهین ماه نزد کهین که تاج بر میانه نشیند همان در میان بدان کت زدانش نیاید زیان بپرسد شما را که این سه همان کدامین شناسید مهتر بسان میانه کدام است و که کدام بباید به برد نام بگویید کان برترین کهتر است مهین را نشستن نان در خور است میانه خودن در میان است راست برامد تو را کار و پیکار کاست به دینگونه رانید یک سخن، زخورشید رویان سر به چمن بمانید با یکدیگر همسرای مباشید از یکدگرشان جدا. بسران فریدون راهی یمن میشنند شاه و مردم یمن از آنان استقبال شاهانه میکنند بانگا هنگام دیار دوشیزگان یمنی پرامیرسند پادشاه یمن دختران خود را به همان ترتیب که فریدون از پیش گفته بود به مجلس آشنایی و تالار زیافت وارد کرد فرود آورید اندران کاخشم شب روز شد کرد گستاخشم سه دختر چنان چون فریدون به گفت سفه خود برون آورید از نخبفت به دیدار هرسه سه چطابند ما نشایست کردن به دیشان نگام نشستند هرسه بر بران هم نشان که گفتش فریدون بگردن کشان از آن سه گران مایه پرسید مه که از این سه ستاره کدام است که میانه کدام است و بهتر کدام باید بر این گونتان برد نام گفتن زنگونه کاموخته سبک چشم نیرن بر شگفتی فرومان سر به یمن همین به ایرانان انجام بدان ازد زود که از آمیختن رنگ نامردش سود خادشاه یمن که در نخستین آزمون سشاخزادی ایرانی تیرش به سنگ خورده بود در آن میهمانی پرشکو فراوان بانان باده و و شب هنگام دستور داد تا بستر آنها را در بوستانی بگسترند چاخ ایرانی مست و مدهوش از باده ناب و شادکام از دیدار همسران آینده خود به بستر خواب سر پادشاهی من که دستی در کار نیرنگ و جادو داشت با افسونی ناگهان باغ و بوستان را به کام برف و تگرگ و سرما فرمو چنان اگر... سرمایی که هر جانداری از گل و گیاه و پرنده و انسان در پنجه آن منجمد می شنن مگر که با بهر وری از های خویش از پدر خود فریدون بر این افسون و نیرنگ نیز پیروز شدند سفرزند فرزند آن شاه افسون گشای بجستند از آن سخت سرما جا بدان فر و فرزانگی و افسون شاهان و مردانگی بر آن بند جادو ببستند را نکردیش سرماه به نگاه چه خورشید برزد سر از تیغ کوه بیامد سبک مرد افسون پشوه به نزد صدامات آزاد مرد که بینت رخانشان شده لاجه برد فسرده به سرماه و برگشت کار به سو دختر به دو یاد کار. چنین خواست کردن به نگاه نبر بر گشت خود ما او آزاده را دید چون ماه نو نشسته بران آن خسروی گاه نو بدانست کفسون نیامد به کار نباید باید این برد خود روزگار پادشاه یمن دریافت که افسون و نیرنگ او کاری از پیش نبرده است پس ناگزیر درخواست فریدون را پذیرفت و تسلیم تقدیر جشن بزرگی برپا کرد و دخترانش را به همسری سپسر فریدون درآورد. نشستن نشستنگهی ساخت شاه یمن همه نامداران شدند جمن در گنج های کرد باز گشادان که چند یه راز سه خورشید رخ را چو باغ بهشت که موبت چو ایشان سنوبر نکشت ابا تاج و با گنج نادید رنج مگر زلفشان دید رنج شکنج بیاورد و هر سه به دیشان سپور که سه ماه نو بود و سه شاه گو شاهزاده ایرانی با سه عروس خود همراه با کاروانی لبریز از هدایای پادشاه من و جهیزیه همسرانشان راهی ایران شهر اما فریدون اندیشهی دیگر در سر دارد او میخواهد خود پسرانش را بیازماین و از خوش و جرعت و شهامت و دلاغری آنها آگاه شود پس به کمک توانایی های خدا خود را به شکل اجدهایی درآورده بر سر راه کاروان پسرانش که از یمن باز میگشت و سازد <تصفيق> او به این ترتیب میخواهد از واکنش هر کدام از پسر خود در برابر این اجده ناخوانده آگاه آقاه گرده باز گردیدن آن سه شاه شداغه فریدون بیامد به راه ز دلشان همی خواست کاگه شود ز بدها گمانیش کوتاه شود بیامد به سانه یکی اجده ها کزو شیر گفتی نیامده ها روشان و جوشان به درون همی از دهانش آتش آمد جهان گشت، زاواز او پرفروش برنگیر گرد و برابرد جوش بیامد دمان سوی محتر بسر که او بود مایه و تاج ور بسر گفت با اشتها روی جنگ نبینه میترد یافته مرده هنگ سبک پشت بنمود و چو. نفت زی برادرش بن هاد میان برادر چه او را بدی کمان را به زه کرد و اندر کشید چنین گفت اگر قارزار است کار چه نقد و چه جنگی سوار بگفتینو اینو بن هاد رخت در گریز، اگر چند بودش دل پرستیز. چون در پسر نزد ایشان رسید خروشیدن اشتها را بدید سبک تیر را برکشید از نیاد اینان را گران کرد و برگفت نام بدو گفت پس <تصفيق> پیش ما باز شو نهنگ تو بر راه شیران مرا گرد نام شاه به گوش رسیده است هرگز به سان مکوش. که فرزند اویم پرس پسر همه گرزداران پرخاش خر. گر از راه بیراه یک و وگرنه نهم تفسر بدخوبی فریدون فررخ چو بشنید و دیل خنرها به و شد ناپدی آری پسر بزرگتر رنگ است برابر اشتها می پسر میانه با تردید میگریزد تنها کوچکترین است که با شمشیر آخته به اجده ها باند میزند و خیال نبرد دارد. فریدون از برخورد پسرانش با اجدها آنچه را که میخواهد در می پس از برابر ها میگویزد و انگاه در منزل دیگری به استقبال پسران و همسرانشان میآید. پسر در برابر پدر از اسب به زیر آمده پیشانی بر خاچ می و عدای احترام می کنند. پدر آنها و همسرانشان را به کاخ میآورد وانگا حقیقت ماجرای های و هدف از آزمون آنها را باز می‌گوید. او میخواست است پسرانش را نامگذاری کند و آزمون اجدهها او را در این نامگذاری یاری می دهد. آن پس سفرزند خود را بخاند به تخت گرانمایگی برنشان چنین گفت کان اجدهای دشم کجا خواست گیتی بسوزد به دم پدر بود که جست از شما مردمی چو بشناخت برگشت با خبرمی کنون نامتان ساخت است ایم نبز. چنان چون بباید سزاوار مغز تویی مهتر و سال نام توبا بگی تیبر آچند کام تو با، که جستی سلامت ز کام نهنگ به گاه گریزش نکردی درنگ دلاور که نندی شد از پیل و شیر تو دیوانه خانش مخانش دلی میانه آغاز تیزی نمود ز آتش را دلیری فزود برا تور خانی شیر دلی و جا ژنده پیلش نیارد بسید هنر خود دلیریست است بر جایگاه که بد نباشد سزاوار گاه که كهتر آن مرد با هنگ و جنگ که هم با شتاب است و هم با درگ ز و ز آتش میانه گزی چنان از ره هوشیاران سزید دلیر و جوان و هوشیوار بود بگیتی جزورا نشاید سطور کنون ای رجن در خور نام بود همه مهتری باد فرجام بود بدان کوب آغاز شیدین بود به گاه درشتی دلیری نمود دلیر و خردمند و با رای بود به هر جایه پای بر جای. بود به نام پریچهرگان عرب کنون برگشایم به شاهی زن سرم را کرد نام آرزون زن تور را نام آزاد خون زن ایرج نیکپی را سهی کجا بود سهیلش به خوبی رهی زمان نی گذرد تریدون و آینده فرزندانش از اخترشناسان میخواهد آینده سه او را پیشگویی کند و با تصف و درد بسیار پی میبرد که سرانجام بین فرزندانش بزرگترین سلم و میان تور و کوچکترین ایرج آتش کینه و حسادت و نفاق شغله بر میکشد. و آینده خونین در پیش است. آنکه بیشترین رنج و مهنت بحری اوست ایرج کوچکترین و گرامیترین پسر اوست پس از اختره گرد گردان سپه که اختر شناسان نمودن چه نوشت بیاورد و بنهاد خیش، به دید نامداران خیش به سلمندرون جوز زختر نشان نبودش مگر مشتری با کمانی دگر تاله تور فرخندشی خداوند بحرام فرخندلی چکردختر فرخی رج نگاه کشفتاله آمد خداوند ما از افتر به نشانی نمود که آشوبش و جنگ بایست بود شدن لوگین شاید چون آن بدید یکی باد سرد از جگر برکشید بیرچ برا شفته دیدش سپه نبود سازگاریش با او به رایدون میکوشد تا بر تقدیر شون پسرانش چیرگی آن و میاندیشد در زمان حیاتش قلم روی پادشاهیش را بین سفرزند خود تقسیم کند تا از اختلافات و چین توزیخ های آینده پریز شود انسان ایران بزرگ را به سه روی پادشاهی بخش میکنه پادشاهی روم خاور را به سالم واگذار میکنه و فرمان روایی ترکستان و چین را به تور و پادشاهی ایران شهر و در حقیقت حکومت بر سرزمین اصلی ایران و سرزمین های عرب نشین چون یمن را به پسر کوچکتر ایراج می سپارد دو شاخ این دید کردار چرخ که از او ایرجش را نبود ایچ برخ نفته چو بیرون کشید از نهان به سه بخش کرد آفرید اون جهان یکی روم خاور دگر ترک سوم چین دشت گردان ایران زمین نقستین به سلمندرون بنگرید همه روم خاور مرور گزید. بفرمود تا لشگری برکشید غراسان سوی خاور اندر کشم به تخت کیون و پای همه خوانندیش خاور خدا دگر تو را داد توران زمین کرد سالار ترکان و چین یکی لشکری نامزد کرد شاه کشیدان یهی تور لشکر به راه آمد به تخت شاهی برنشست کمر برنیان بست و بگشا دست بزرگان بر او گو حرف شاندند. جهان پاچ توران شهش خا وزان پس آن پس نوبت به ایرج رسید مرور را پدر شهر ایران رسید هم ایران و هم دشت نیزبران همان تخت شاهی و تاج سران به دوداد کور سزادی تاج همان تیغ و گرز و همان تخت آج سران را که بود هوش و فرهنگ و رای مرور را چه خواندند ایران خدا هر سه بارا مشاد چنان مرز بانان خسرو بشاد. برآمد بر این روزگار دراز زمانه بدلدر حمی داشت راز فریدون فرزانه شد سال خرد به باغ بخارندر آورد گرد بر این گونه گردد سراسر سخن شود سوست نیرو چو گردد کهن دزارد. هر تازهی که نمی شود و هر جوانی سر انجام پیل. و بدین سندوران که حولت و سال خوردی فریدونیز از راه می رسد و دردناکن که تاجعه بزرگ زندگیش در این روز ها رخ می و از راه می رسد تاجعهی بخواست از رشک و حسد ای که تأثیر آن چندین نست از ایرانیان و ساکنین سرزمین دور و نزدیک را در خون آتش فرو می برند ها برباد ها بر باقی و دشت ها از خونگونگی میکند و فوق های گستردهی را خون رنج که زمین سازه جنگ های پایان ناپذیر ایران و توران در آدنده می شود این پاج می این انتاج ارادامن می سود کدام کس یا کسان بزر نفرت بیر پای برخواست از حسادت را بر پهنه ایران بزرگ می پاشد خبروسی بزرگ این تاجعه را چنین رواهیت میکنه خنون باز گردم به کردار سلم که چون ریخت زیرت همی خونه گرد به جنبیت مرسلم را دل زجار به گربونه پر شد با این و را دلش گشت قرقه به آزندرون فرندیشه بنشست با رحنمون نبودش پسندید بخش در که دادش به کهتر تر پسر به دل شد، به رفت پرز چین، فرسته سی شاق چین بگفتان چند در دل بود، کیونی بران سو برارکان سو؟ به نزد برادر جهانویر تو، که دلش رعی و اندیش دو رستاد نزد برادر پیاب جاوید زی خرم و شادکان بدان ای شهنشاه ترکان و چین هنرمند و روشندل و بهگزین زگیتی زیان کرده ما را پسند منش پست و بالا چو سر بلند به بیدار دل این داستان که از این گونه نشنیدی از باستان سفرزند بودیم زیبای تخت یکی که از ما مهامت اگر محرم من به سال و خرد زمانه به محرم من اندرخورم گذشته زمن تاج و تخت و کلاه نزیبد مگر بر تو ای پادشون بمانیم هر از کزیمسان پدر کرد بر ماستم چو ایران و دشت یلان و یمن به ایرج دهد روم و به من سپارت تو را دشت ترکان و چین که از ما ایران زمین؟ به این بخششن در مرا پای نیست به مغز پدر تندرون را نیست سرشت پلید سال نخستین احکر این جین توزی را میفروزند او که از پادشاهی برادرش ایرج بر ایران شهر خورسند نیست به تور برادر میانی پیغام میفرستد که پدر ما بر ما بیداد کرده است برا فرمان روای روم خاور و تو فرمان روای دشت ترکان و چین داده است و برادر کوچک ما را پادشاهی ایران زمین بخشیده است اگر پادشاهی ایران زمین به من که بزرگترینم نمیرسی به تو که فرزند میانی هستی باید داده میشد نه بکوچه کوچکترین و ما تور نیز در بدنهادی از سلم دست کمی ندارد اونیز خشمگین و آزمندانه و, و کین توزانه به فرستادی برادر پاسخ میدهد که آمادی بیدار سلم است. چون این راز بشنید تور دلیر برا ناگا چون تنشید چنین داد پاسخ با شهریار بگوی این سخن همچنین یاد دار که ما را به گاه جوانی پدر از این گونه بفریفت ایداد گرد است این خود نشانده به دست کجا بار او خون و برگشگب است تو را با من اکنون بدین گفتگوی بباید به روینده را دو برادر چین توس، دو آسمند دو ریز، دو قرقه در رشک و حسادت در مرز قلم پادشاهی خود با یک دیگر دیدار شومی را تدارک میدند به رفتان برادر ز رومین ز چین به زخن نرامیخت انگبین وسیدند پس یک به دیگر فراز سخن راندند آشکارا و داخ حاصل نامبارک این دیدار پیام بیشرمانه است برای پدرشان که موبدی تیزدی با پوش میبایه آن را در پا تخت ایران شهر به فریدون تسلیم. کنند گذیدند پس موبدی تیزدی سخنگوی و بینادل و یادگی زبیگانه پردخته کردند سگالش گرفتند هر راه. را سخن سال پیبند کردست از ز شرم پدر دیدگان را بشست فرستاده را گفت ره در نبارد. نباید که یابت را باد و گه برزود نزد فریدون چو باد به جز راه رفتند کاری مباد چهایی به کاخ فریدون فرود نخستین زهرد و پسر دهد و رو. و دیگر نگویش که ترس خدای بباید که باشد به هر دو سرا جوان را بابت روز پیری امید نگردد سیاه موی گشت سپید